بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمین صل الله علی سیدنا رسول الله وآلومت الیوینا صاحبین اولی که با مسئله تا اینجا این است که آیا از سالات الاموم که جزوه اصول لحظیست سی نفسه جاری میشه و حجت هست یا باید فهت از مخصص کرد و بعد از فهت از مخصص از سالات رو برشتم از از کرده این مسئله اطلاعا در خفه در اصول اهل سنت مطرح شده و قدیمه و یک معیار رو هم همیشه از کرده در ذهن وارسون باشه این سنخ مسائل مسائل اموم و خطورتونه سیر و, و افعال و غیر زاله که وجود یا اصولا مباهتی هستند که اطلاعا بعد از اواخر قرمه دوم رح شدن مثل بعد از اون ترهشون من همیشه ارز کردم مواحصی که در حسول معروض به حجت و برگشتش به مسادر در قرن اول بعد از صحابه بر در در در در سلاصل و رهکت به امره سلام و سلام و مطرح شد این مسادر از سال های و دو بعد و حسول این مسادر که در حسول مربوط به امارات و حجت و طراب است یعنی اصول عملی قرشش از قبل دونه که به مساعده مثل ها و قیاس اینها برگشتش به قبن دوم و به و این بود آیان در در نیمه های قربن اول ساله شسته شروع کردن به تفریعات فقری فقر شد در اسلام تا سال... خب بعد ادامه بکنیم تا حدود سال هسته هسته هسته علما گفتن اون در اشته و استنبال معصره اینا جمع بعد یک سال بنا با اولوزی اناسره مشترک رو در استنبال جمع و هم هم این شد مسایی رو جمع بکنن که در عبراب فقه تأثیر داره یک در یک باب در فقه سایی رو این تدریجا منتهی شد به اصول اصول اینجای شده. و قرن چهارم قرن سرم سال دیویس بعد حدیث سنت شد این مقدار تدریج معارف خیلی مهمه تدریج حدیث بعد از اصول و مثلا رجال رجال هم با اصول تقریبا همه اهل تدریج شدن مبارس رجالی با اصول تقریبا همه اهل. بعد از او ساله های دیویس به زیادی روی حدیث شد و منتبی شد به به اصطلاف حدیث که محلوش شد به تحسین و تحسین و این حدیث سریع از سا و سال فسقه مثلا مشروط این کتابش رو کتاب سری بخاری در سال دیویس پنج و بقیه از شد و حالا سال دیویس شما این کل جنسه ها در این فتر باشید در فتر 50 ساله کل معلی فیلسه ها به لحاظ وفات وفاتشون مابین وفات بخاری باموسته 236 الان یه این بخص و طور کنی همیشه در ذهنتون باشه چون نافه برای تاریخه امت من ارز کردم تو زمانی که حدیث شکل نگیره بود چه پر به جا شده بود چون بحث حجت خبر ثقه رو گفتم وقت افتادم فر حدیث بود تمام این, این, این کسی... تمام. حدیث نه نبود حدیث صدق و تمام تایماله که حدیث اولین جایی چون اولین کسی که الان کتاب شما رسید محمد بن حسن شیبانی هم اصول داره خب را میشه من نمیخوام تفصیل صحبت بکنم مراد من یک اطلاع اجمالی است که این نهر اون وقت این سنخ مباحثی که در این رس مطرح شد سال مثلا سی سال و بعد از انتشار مکاسب کلامی رنگ و بوی کلامی گرفت و الان هم ادهی از کتب کلامی که ما داریم اهل سنن همین متکلمین بزرگ اینها اصولین بزرگ هستند هستن چطور نازم در این آونه اخیر ما برسته هاشه منواشانسین رنگی فلسفی گرمسید در اونجا رنگ کلامی به خودش گره به رضای ادهی از این مبارس اصولی اصولا ریشه و مبنای کلامی دارن نه ریشه و مبنی اصولی حالا اینشاد اگر اون ریشه های کلامی ها رسیدی من توبیاتش ارز میکنم جاش اونجا اینشاد و این بحث ریشه شوی این جهت بحث شد که آیا شما در اسالۃ الحقیقه که اصل لفظی است، این قاعده رو ما میگم. شما فقط از مجاز می‌کنید، دیگر نه. خب پس چرا تو اسالۃ عموم فقط از مخصوص می‌کنید؟ بس، ریشه اینجوری متفقه. شما اسالۃ الحقیقه رو اجرا می‌کنید بدون فحص از مجاز. چرا اسالۃ العموم رو اجرا نمی‌کنید بدون فحص از مخصص؟ اون اسالۃ الحقیقه این اصل بحث بود این اصلی که بحث مطرح شد به این شیوه بود و این طبعا تبیین این تعبیر تعبیر اصولی است این یعنی بحث اصلا ریشه کلامی نداره چون من عرض کردن مباحثی که به ظهورات برمیگرده اینها همه تو اصول هستند به طرزی کل مباحثی که به ظهورات و لذا خود ما هم در تقسیم بندی اصول وقتی عرض شد که مثلا اصول رو مهم تقسیم کلی یک بخش از اصول قطعاً بخش ظهورات یعنی ما باید به اصطلاح اصول رو به چند بخش اساسی تخصیل بکنه یک بخش اساسی زهورات این بخش زهورات واقعا بخش بسیار مونه چه در مرحله کبرا که چرا زهور روجته چه در مرحله صغرا که چه زهوراتی روجته البته من سابقه برم کردم ولی اگه باز جایی پیش آمد توضیح میدم بعضی از زهورات رو تدریجا درها از اصول حرض کردم. این که در بحث شما درستیده فعلا شما حتی به علامه رو که از اصول سنیت تحقیق ها نگاه بدارید مواردی در مفادات هم جاره واو به معنی جمع هست الا فاو سوم و اصلا حروف رو تفسیر کردن هر صد متند از علمای شیعه ما هم دارن اما در معالم این بحث برداشتشون بحث واو و فا و سوم و نیم دونم ربه و این بحث کلا تو معالم بی از دست الان تو اصول ما نیست کل نه یعنی وقتا توی گاه های ما چون مغریری می خوونن این تو مغنی بود دیگه احتیاج یا چه تو اصول بکنن؟ بحث ما از اصول برداشته شد. چرا چون نظرشون شد که اینا بحث جغلیز ارزش بحث اصولی نداره ولی لذ در مواز ظهورات هم ما باید میار بدیم خوب دقت بکنیم چه بحثی از ظهورات رو ما توی اصول بگذاراریم؟ چه بحثی از ظورات تو اصول نداریم؟ و البته در اصول متأخران که البته این اصول متأخر انحساب به زمان ما نداره اما انصافا علمای شیعه متأخر خیلی زحمت کشیدن یه مش از موارد تحلیل لغوی رو هم اضافه کردن مثل معنای حرفی و معنای اسمی و معنای فعلی و معنای علت این رو هم اضافه کردن ولی قبلان نبود انصافا بگیم بود اما به این سه در مباحث اصولی ها نبود این مباحث زیاده که مباحث لغبی ها هم بود نحوی ها و لغبی ها که در اصول به این توسعه نبود خیلی دامنه کمتر بود به یعنی انصافاً اصول هم ترخیره چیه در این جهت همتا به سننی ها هم مقدمانی کلت مباحثی که ما در هر حرفی مطرح کردیم اهل سنت کلت و اصول ندارد انصافاً این اصولی که من میدارم یه چ پس مبارس، این مبارس زهورات یکیش همینه بحث عمومه این نمیگه از مبارس زهورات پس سوالی که در حقیقت روح بحث روشن شد این بود که چرا شما به اساس الحقیقه مراجعه میکنید بدون فحض از مجاز؟ اما به اساس الحقیقه مراجعه میکنید الا با فحض از مخصص این چه نکته فنی داره این اصل مثلا در اصول شیعه هم این مسئله آمن هست هست از مخصص اما مسئله از زمان شیه هنسایی به بعد قبلش هم بوده اما مثلا این کتابای درسی حوضه ما مرموم میشه قدس الله نفسه در در اصول عملیه این بحث مطرح کرد اصول عملیه جاری نمیشه در شباط حکمی الا بعد الفهد مثلا استخاب در شباط حکمی کنی خود جت باشه جاری نمیشه الا بعد الفهد. این بحثشون توسط علمای ما مفصل مورد بحث قرار گیره و من جمله بحثشون اینه ما در اصول عملیه‌ای که در شواهد حکمیات بحث می‌خویم اما در اصول عملیه در موضوعات بحث نمی‌خویم شیخ هم طباطبایی ترجمه شده وجود اینا اجماع از شیعه از سلام و عاقبت در صحبت این بحثشون در شیعه مصطوفا مختص به تفصیل ما بینه اصول در شبهات موضوعیه رو بکنیم بحث شد در مثل که خایی در آمدن این نکته بیان بکنن که ما در اصول دو تا بحث داریم حالا این در شیعه شد دیگه یکی فهض اصول عملیه یکی فهض و اصول لحظیه که اساس آخر عمومتون چرا علمای ما باردی این بحث شدن؟ این نکته شد این سوال مطرح کردن چه آبا شما اینجا در برواقص عموم فحض از مخصص کردیم. تو اصول عملی هم فحض از مدرح جاری. این تکرار نیست این آبا نه نه تکرار نیست این با اونجا فرق رو کنه تمام در اونجا بحثی که شما از مخصص میکنین اون درباره تمامیت مختزیه درباره مختزیه چرا؟ چون اصول عملی جاری نمیشن الا در با بیان مثلا یا شک یا جه بکنید پس شما باید فحص بکنید تا این لابیان ثابت باشه فحص بکنید تا این جه پرسن شد پس فحص اونجا باید که ثابت بشه شما جاهلین حالا که جاهلین استثاب بکنید یا لابیان فعلا برای شد پرسن شد اما در ما نحنفی رتبه یه وست رتبه یه چون خود اساس الاموم هجته پس ما هجت داریم من خیلی میگوید از هجت هست یا نه این طرحی بود روستش اصلا من چند صحبت کردم. هستم همروز دیگه برایم جمع جورش میکنیم بحث روستش پس یک بحث این شد که آیا ما فحص در مخصص میخواییم بعد این دیگه قبول شد علما همه قبلا نویشتن و بسید نویشتن چون قاعده به که فرس نمیخواهیم شبهش این بود این با اساطر حیده چه برمه میکنه اساطر عموم با اساطر حیده چه برمه خبیل خب بنام شد که فرمش واضح میشه بست دیگری و علمای ما مطرح کرده این فصل اینجا این بست تکراره یا نه سؤال آیا این بست تکراره یا نه یعنی اون بستی شما در رسوله عملیه کرده خب اونجا هم فرس دیجه میکنه اینه که مغمونه آینی به فاقل سارو جفایی در کسا اینجا نه اینجا تکرار نیست اونجا بحث در رتفای مختزی اینجا بست در رتفای مانعه خب که شما رتفای مختزی در اصطلاح شما را تا ما اصلا رتفتاً مختزی محدده نیست که راستی جلسه میدونید که معرضیت درسید حالا این جواب درم جمع میکنم. بحث کنم بحث هم داریم حالا اون جواب دیگر و عرض می کنم اینشالا مطلب می تا حدی گرفته شد در روشنگ پس سمت بحث پیش اهل سنت یه چیز بود سمت بحث پیش ما چیزی دیگری شد چون این بحث رو الان من پیش اهل سنت به که خودم من نهیده واسه استقبال منم تاهمی شد ناقضم بزرور شد به این مصطفایی که مثل شیخ که چل آدم فرصوی اصابتان براه در شباز موضوعی مثلا نمار مثلا شما فصل نمی کنید اما در اصابتان براه در شباز می فصل. آیا این بحث تکرار یا نه مرحوم شیخ خمسالی مرحومه که و مرحومه می زنهایی گفتن نه آت تکراره بحث نه بحث آه خویی می فرماید نه این طور نیست که بحث اینجا در رتبه مانع باشه بحث اونجا در رتبه مختلفی باشه مثلا اگر شک در, در شباهات در اصول عملیه در شباهات موضوعیه باشه رتویش باشه رتبه مانع هر دو مانعه با ما فحصه که ما نه رتوی می بگیم اگر بحث فحص و بدحاد شریعت در نظر بگیریم و بعد نگی در شریعت ما فعلا داریم هر و شباهات حکمیه مثل اصول اینجا هر دو در بروتوی مختصیه فاهمه پس این دو تا بحث از اینجا فرش هم داریم عرض شد ما چون میخواستم ارض شد که ما برگردیم اول آقای بحث تونیار رو سابس رو بکنیم بعد بحث خودمون. اما راجعه به اون مطلب که فرص از مجاز ارض شد درسته ما فرص از مجاز نمی کنیم لکن الان با وضعی که پیش در مجموعه ادله شرعیه فقیه بحث فحث از مجاز هم میکنه چرا چون نقطه بحث اینه درسته اصلاحیقه اگه اصلاحالاییست لیکن خودشون تفسیر کردن این جایی کاری میشه که ما شک در وجود مجاز داریم اما اگر شک در مجازیت موجود داشته میگه اصلاحیقه جا نمیشه و ما در مجموعه عدله شرعیه خیلی جواعتن شرط داریم که آیا این قرینه برای مجازی یعنی این موجود مجازی یا مجازی نیست یعنی اون مشکلی که ما به طور کلی در احکام شرعی و اثر گذشته زمان و امهانی که در بعضی از عدله بود و در آهر کتاب ها زیبتر سنت ندارده و خطابایی مثلا مثل اهل سنت فتحه صحابه رو برایش ازش بایی خاصی با ادم هکسر اهل سنت ازده هم مخاطبت های صحابه و فتحه های این یک مشکلی درست که از برای حل این مشکل ما مطلقاً نمیشه بدون فهض به اصلاحات حقیقه تمثل و به اصلاحات اطلاح تمثل بکنیم به اصلاحات رو هم تمثل بکنیم مثلا مثل بدون فهض به هیچی ایک از این اصول لبزی تمثل ب این به خاطر این مشکلی در فیخه احسام پیش آمد احساس به شیعه هم نذاره پس اون بحث اون به اصلاح اصولی سنی مطرح کرد که شما بحث از حد از مجاز دیم چه بحث از مخصص کنون خیره فعلا تو عده نظرم رو تحصیح کنیم با حالا جایلا بعضی که پیش آمده این اصالت ها کجا عرضش داره مثلا در جایی که یک قانون اجتماعی هست یک عمومی گف میدونی مخصص بعد میاد اگر شب کردیم اساطر عمومی رو محکم بله الان وقتی که پیش آمده ایم. و اصولاً دقت هدف اصولی ها این بود که اگر بنا بشه بین اساطر کتاب و, و اساطر اطلاق کتاب تناسب جوی شه هر آمی هم مشه یعنی فرق بین عامی و مشه پی به الان در کتاب اصولی در اسال تطبیق دنبال مجاز نه در اعله شرعیه میگه ما میگیم که در مهاورات عرفی بعد ما باعث های زمانه اما الان که رسیدیم تصفون ت تایم و سعیداً طيباً که تهم من خودی یادن و صلات من خودی این لفظ من خودی اوقات بره و لا صبحاره والدت و رجا در این معنای معنای دیگری بود بره من حرج بود تفاهم اکثر فعلا وضعی که پیش اومده در روایات و عدله سمعیه به الله سازمه یک کارن بشه مراجعه میشه لیکن در معاورات عربی از سال سال عموم هم بشه مراجعه میشه لیکن در قوانی عربی بلا بله چون در اینجا نتیجه فرس با میگید میگیم این ظاهر مراد نیست این, دل... این مدول استعمالیه مدول جبی چیز دیگریه مراد استعمالیه خیلن در اثر قضایه که پیش آمده نهی صد مجموع و اینها مجموعه عواملی هستند. یک عامل هم نیست. تا وعده مهم عامل به بنظر ما این کار رسایت امیر و موسیام داله بعد از رسول الله. یه نگه این مسئله رسایت جامعی افتاد خیلی مشکلات حل میشه. اگه نگه همه مشکلات حل. بعد از او امیر سعی کردم که به احکام شریعت، شرق، یعنی به خود نظام شریعت یک شکل فرهنگی به استفاده مزوم، شکل علمی بدم و اون ترفنی که این داره. و خب این بحث مسئله روز یعنی یک ماه در اون مجمره مشورتی عمر مطرح کرد آخرش کسی میگم که مطرح نشد تذویر <تضمينفر> نشد <تضمينفر> خود همین تذویر نکردن مشورا درست شد به هر حال فعلا شد دیگه بعد اضافه و اینجالا قبول نکردن با خود وصی رسول هم جنگیدن و با داد خاندان اهل بیت یعنی اگر باز میذاشتن انتقال علم میشد آزادانه صحبت میشد باز هم مشکل حل میشد یعنی مجموعه اوامل به همدیگه دست شد این ورز پیش آمد فعلا در معارف دینی این ورز پیش آمد نه اینکه اصلاحیقی اگه اصلاحیقی نیست هست ما هم به کار نیبریم لیکن الان موقع در یک دلیلی فرض میکنیم که بعد اصلاحیقی منحقی مراد شده با اصل نمیتونیم اصباد بکنیم تقضیم پس این شبه و لذا من عبارت این کتاب اهل سنت رو خوندن این بحث از فست از مخصص نیست ناسخ و منسوخ هست حیرت و مجاز هست کنایه و تسریح هست نمیدونم فست این مخصص آم و خاص هست جهاز مختلف یک نواق نیست نمیدی ها رو فقط بحث از مخصص و نزا در حقیقت باید گفت این مضموم ناینی بندس الله نسل ظاهر این بحث دیدن فست از مخصص اگر ایشون کلمات آمده رو مراجعه می‌کردن مرادش همون فحص در درادله شریعت و این فقه عین همون فقحی است که در بحث و اصول عملیه شیعه نوشته فکر نمی‌کنی همونه خب دقت می‌کنی چون اینجا بحثو در کتب اهل سنت از مخصص خیال کردی یه بحث دیگریه غیر از بحث فقه خب شیعه هم تو بحث و اصول عملیه گفت شما اصول عملیه در شما تو حکمی جاری نمی‌کنه الا بعد الفحص. اونجا فرق مرادشون چیه در مجموع عدله شما مجموع عدله فرق بکنید به نتیجه که نرزید استصحاب جایی میکنید مراحب جایی میکنید اونجایی نگفتن اینجا آمده در گفتن فرقه از محسس دین که یه برزه دیگریه اگر اینها کلمات آمنه رو نگاه میکرن که تطریق دارن که این بابا فقط محسس دین نازق و منصور هست حقیقت و مجال هست مصالحات بین و اجتماع و امتناع ظهورات در مجموعه همون فصلی که مشخص کل این بحث از مختصره داشت از اکثر عبارات در اگر فصل در اینجا مراد این باشه این دقیقاً همون فصلی است که علمای ما تو ذیل بحث اصول عملیه آوردن این فرق اون یک چیز فرق نمی‌کنه چرا موقع لاظه عنوان مساله تبادر یعنی چی از چی از لفظ مختص اصلا این بحث مرادشون فقط از جميع اجزاءه خب هم بحثی در فقط در اونجا شما یه نکته اینه چرا شما در اصول در شما شبیه بحث میکنید در شواذه موضوعیه نمیکنید خب اینم معلومشه اصل شروط اصول اینجا مهمان البته بحث اجتماعی مونو سالا اون بحث اجتماعی <تصفيق> در فن اینجا شروع در عملیه ما وقتی که یک در, در اینجا همین می‌خوام در, در, در, در هم روسیه خب اینجا داره میگه شما واسه بحث به لغزه مگر با فن خب این فنی که شما که از از این محمد هم اجمال داره، اطلاق نداره، عموم نداره لفظش از الفاظ عمومی این فحث ها مخصد تز مخصدش مبهن و مخصد ضعیب برود لاخره این بحثا اگر به نتیجه نرسید، کنم هم محمد اوصول هم از فهم این بحث در اینجا با اونجا یکی شایم بنابراین مخاصد این اولیه افراد یه لحظه من از جا. فقط نکتی فرقش اینه که در اونجا گفتن در اصول عملی خود در شواذ موضوعی فص نمیخواد این یه نکته است اونجا این راست این یه در اونجا و نظام باید نکته بیان بکنه چرا در شواذ موضوعی فص نمیخواد در شواذ موضوعی میخواد اون ویروس تو بینی چقدر اون نکته کی ویروس تو بینی پس یه چیزی که اونجا زیادی داره اینه چرا در موضوعی فصل نمی این رو زیاد دیادی؟ اگر موضوع تئوریسی با جزئیات کامل باشه، هم جهان بحثه، تازه هم خود آیا موضوع جزء موضوعات مستنبط‌تر زیادن؟ خب اونم ویژه باشه. اونم موضوعی که مفصلی شده یا نه؟ از از از از از ما این بحث خب این زیرود ما در حقه از موارد بنای علمای ما به بحثه. سرود در شواهد موضوعیه. مثلا آیا مستقیقی شده یا نه؟ ناید. سر سال و خمسی شده میدونی تو آشراسون نگاه هم به چقدر؟ به چقدر؟ چقدر؟ ایدارت ایمت میکنه؟ این مصارف که سر سال و این هر، این بحثش اونجا این ام شک که از شک واجب یا نه؟ ام ساعت عدم چون مال با آنوم چندی که سه میلیون است؟ چند؟ چه میلیون آذربیج. شک می‌گویم افکارشو پنج میلیون رتیک دنر صد روز برا انجام. از صد شک تو شک که بنده سرعت سری کوچی به خلافه. مشهور و لا معروفه مشهور الان از هم که مشروط میدونن شک در شرط میکنه اصلا که موضوع شرط هم شرط هم, هم, هم در اون که ای در موجود اینجا نه در اگر در موضوع در موضوع شک در وقتی اون وقت دیگری است دیروز من اشاره کردم اصحاب روش میدارن ما میگویش به دن خود مرسید او که بردسید تفصیل این وقت در اونجا پس این فهض در اینجا با فهض در شباهات و حکمی در اصول عملی یکیه ایش فهض رو کنه شد درشم نانواتی است موضوعش بله بله از بادیه فجر اسلام اینجا میتونن به اصالت اون تمسک کنن بدون فرض ماجزه اونا نیست که اینو میشه نه اینو واسه فردی دیگه ما گفتیم قوانین مالیه وشان اختصاص ویژان نداره و باید بفهمید اینکه در صدر اسلام میتونه ثابتونه اینکه فکر کنم در اصله. در اصله حیران بالاشه. که اما الان این برای ما فایده نداره که این در. فایده نداره. یه موردی برام ایجاد کنید بحث فرضی و اصولا ببینید یکی در فضا هامون به فرض عادی کنیم فرض را این ببینید اصلا فرض علمی صوره که این رو پیدا کنید یعنی کاری رو کرد مثلا ایده های علمای ما مثلا کتاب نرسن دوستا به بعد از اون مبنای آخر فرض مبنای اول صحبت کرد که علم مثلا هر چه تسطور علم تصدیق ما الان در حوزه های ما یک درد کلی فن از سالی چند یک درد کلی در حوزه های ما این است که الان رو علم گرفته. خب این باید برداشته بشه. من هر این کار رو انجام بدم بگم حوزه دست تغییره از ها به طرف دیگه. یک گزارشی رو به دست ما بلسه که مثلا در تلموس ایده از اس به همون اصالت رو و اصالت اون کردن اما این وضع قبول شابه واقع نشد این رو کار باید بکنیم؟ اون دان حساب بکنم خود چیز عجیب بکش به اسلام پیغمبر بگه نرجعه ده من چیز نگیدم؟ آقا این ما متاسفان. یه وقتی هم عرض محاصرین که در اقتصاد کتاب دارن یه بحثی هست که ما علم اقتصاد بگذاریم برنامه اقتصاد علم اقتصاد اسلامی چیشان جازه برده میشونیم با فرد نفروز و افترازن با فرد مثلا فرض میکنی که اگر در یک جامعی مثلا نظام بانکی رو اولی نباشه اینجور لازم میاد مثلا سرمایه با بیشان توجه نکرده. نکردن اون کسی که کی میگه علم اقتصاد اسلامی نداری یعنی شما اگر من دوستیم فردیه فرد علم نمیدونه اون که میگه نداری چون اون فرد رو علم نمیدونه نه این که تو بگه نفسر از دو افتراز هم فرد علمی نه در فیزیک علم جز حوزه های ما در حسول که از این معاطمه برداشتن بخش اینجور بردر کردن و ایباق رسلی در دنیای علم فرض بیا امرو رو واقعا درم بعد سه شهار دفعه اون فرضی قبول نداره برداشتن نمی.شه مطمئن خب این عرضش این اصلا علم میزن هیچ خاص از نام اول به طرزیات مختلا نکن چون ذهن کاملا منحرف اینقدر ما مطالب در داریم بده میگه موارد و طرزیات مضافه که باب فرض محدود میشه باب واسعه فرض دیگه شما میلیون ها انجام الان ذهن مشرحله از نه حال در هم یک بعضی احکام که هیچ مطلوبه نمیشه با ساله. مثلا 6 سال موضوع خارج میشه مثلا موضوع ممکنه کسی تا آخر آن کسی تا آخر سابقاً مراجع ما طبیباً معظمشون حج نمیردن چون مستقی این روزه ما سوالتاً ازوانی خب ممکن به حج نشون مثال حجر نمیردشون ابتلافی دادن یه چیزه اما فرض کردن که ما فرض رو جای اینجای اون صحابه قرن اول چکار بکنم فرض شد <سید> که نمیزم ده ده. این از وقتی فنی نمیدونم چه اعتباری داره این یکی از اصحاب یا ابوریا یا مثلا دیگه خدیه بنو سعیدان طیب یه جوری برخورد کنم و مو عمل کنم خب مثلا اصلا واقعا مجازه تو تصاحم انجام داد چرا ماجرده شاید قبول نمیشه شاید گفت نه و نظام آیه آمد شد آیه بهش نرسید رو چرا یه ترمون در دو تا از اشتباه باشه یک آیه ترمون فطه بنو سعیدان طیبا همین مقدار یک عادی فهم به وجود حکم من ویدی من اینم بله. نه 5 به وجود کم تو می بله. به وجود و ویدی بله. بله. من دنیزم تو یکیش هست تو یکیش؟ نه, نه. تو یکیش که من اون یکی در سوره است چه لازمستون و آخرش داره به اینکه صورت رو و عمر رو اون آخرش داره ما و این اصوله ماعده اولش کلم تجدوا ما کلم ما و به ذهن ما همین منظره به وجود یکی این نداره دوره یکیش به نظر سر همیه ولی یکی از نسان نمیدونم مارده نمیدونم به هر حال باید بحث نشین یه قد ممکنه بشین مطلب در از که به سیما موسیقی در سیان بسند حالا به هر حال پس بنابراین حق در نقام اینه که اصولا این فحث با اون فحث فرقی نداره بحث این بحث که آیا اصالات الاموم با شک جایی میشه فی در قوانین بشری در جایی که معین باشه بله خب این راسته انصافاً راسته یعنی به عبارت مخرا این بحث فسته از اساط العموم از مخصص مثل قضایه فلسفه قضایه حقیقی نیست این به بنا فرق میکنه الان در مجموعه ادله فقه اسلامی ما اینطور نیست الان اینطور نیست اما در جای دیگه شراح پس در قوانین شده وقتی که عموم قانونی آمد تا اون مخصص چون تفسیر رسانه‌ای نشه انسان بر اساس اون عمل میکنه این هست این متوارث بله اگر رسانه‌ای شد از اساطیر اون دست خارج میشه مسلمین هم همینطور بود قبل از توخصی اون خارج تاریخ دید. الان امام مسلمی ونجام زمان امام معنوی یعنی مطلبه نبوده من هم. مثلاً از امیر ما در همین کافیام هم وارد شد در رساله از امیر از در کافی آمده از امیرالمؤمنین تمام در تهاوز و ربا سوال شده یعنی تهاوز و ربا امام میان شهر می این بحثی ما هم نمیکنن که کدوم میگه ابوسعبت بود کدوم میگه مشهور است کدوم امام مثلا اصولاً یک یعنی نقطه رو بیان میکنه میخواد میکن در کلام خود پیغمبر بس دو جور نبوده گاهی نسخ بوده منسوخ دیدن ناسخ پیغمبر ناسق دیدن منسوخ پیغمبر گویی آموخاس بوده دقت میکنید خود این یه نقطه خود این که امیرمون از همون زمان ما میگه بוא شما سوال بکنید بررسی میکنیم که ناسخ بوده شاید ناسخ بوده شاید مخصص بوده از همون زمان که اهل سحابه این مشکل رو از کردن اصل مشکل اون انکار وسایت و انکار قصه قدیب و اون جریاناتی که پیش آمد دیدیم خوانم اصل قصه اون بود و بعد هم تحریف سامان داره داشتن که تدریب بشه تدریب بشه اصلاح اختلاف کن تو حسابش نصاب شطور رو نبایدون چقدر زرافت داره نصاب خب در نصاب جز یه مورد تقریبا ما در معظم موارد با سنی ها اتفاق داریم فکر خیلی داریم و با اون موشتی پنجتا پنجتا بعد بیست و بعد اون نصاب ما با سنی ها غالبا در قالبش اتفاق چرا؟ چون مال ذکات شطر و گوستد و رو به حسا اهل سنت به عنوان یک نامه در همی سای کتاب ما کتاب فرا این کتاب که نوشته شد اختلاف کرد میشه مثلا نوشته سر سبب علت اختلافه تدوین که میشد خایه نخای اختلاف عمیروونی اصرارしてた اینا تدوین میجون نکردن هر چند و اشکال عمر هم این بود که چون یهودیان این کاری کردن دو تا شدن میذان سمره و سایه و اونان یه ادعای دومادون نویسنده رفتن اینکه اون حرف عمر خلاصش نیم بود چون عمر با فرهنگ یهود آشنا بود با اون قبل اخبار که و عبری هم برد بودوران هم به عبری میکن این نظرش این بود که اگر ما این کارو بنویسیم این سنت رو که جمع بمانیم مثل مشنا رفت کتاب میشه مشنا که مشنا عرب ها مشنا بیم پارتا مشنا میگن مشنا مفضل تلموده شیشت کتابیس که با عنوان خود میشنا رفزه به اسطلاح عبریش میشناس به عربی میشنا. یعنی در زمان فیغمبر چون فیغمبر در مدینه بودن و اهل کتاق منتشه بودن در مدینه یه ها قاعده این بود خوب در قطع اگر گاهی به لفظ عربی ابریش تلفز میکردن گاهی تحریب میکردن خوب دقت قطع گاهی تحریب میکردن گاهی ترجمه میکردن نظر همین روایتی که از عمر نفسده که از و حدثانت ها متحیر این سه جور لفظ شده هم مشنا عرض شده هم مسنان عرض شده متنا مشنان لرزه ابروی مثل موشه موشه ای از آب گرفته متنا تعریف شده چون یکی از قواعد تعریب اینه که تبدیل به میشه مثل نساور مثل صابور مثلا مصنان ترجمه است هر سند درسته. و ده موری اینه که وارد اینکه گفته نشا که نشا کتاب مشنا که اهل کتاب یا متنات که اهل کتاب این حرفش درسته به این ترجمه فارسی نو سگو این احکام رو ما از تورات گرفتیم المصنای تورات در لغت عربی آلمانوسننار امروزی بودن مشنا خیلی متقاربه. در لغت عربی الان ما فارسی میگیم آلموسننام میگیم آلموسننام را ایجاد کرد. خب چیست؟ تازه این سه تا یکیه یا تنظیم کنیم که کدومی دارند تو برایش چی گفته اومد؟ هر سه تا رو. هر کدومی الان ما از بعض خارج شد و چون یکی از مخلوقاتی کاره. این آخره که این مختلی چی گفتیدن پس اگر مجناس این لفظه ادریه اگر مجناس این معرب شه مثل نیشابور و نیسابور اگر مصناس این مترجمه شه این المتنای تورات اسمش این بود مجناه یعنی المصنا این ترجمه ما به فارسیم گفتیم الان میگیم المصنا چرا بشه علماثی ها مکرر چون مکررم تفسیر شده چون این احکام در توراز آمده مکررات تورازه علماثنهای توراز چون علماثنهای توراز بود اسمش مشنا گذاشته پس حلث لفظ درسته نه این که میگی درسته بیش باطله. و شواهد تاریخی نشون میده که در مدینه حلث کار رو میکردن یعنی گاهی لفظه چون یه بود بودن تو مدینه گالی لفظی امروز می کردن، گاهی اوقات گاه تعریفش می کردن، گاه گاهی هم ترجمش می کردن، ترجمه به این سه تا حدیث ببینید. به هر حال من والیم بحثشام فعلا اون چیزی که ما داریم تازه روز اونجوری فعلا ما برای به در مجموعه عدله حقیقت فباحت مراجعه به جمعی اجحاءت و به رو نداره. تازه ما بعد از اینکه مراجعه کردیم و ادله پیدا نکردیم از بزرگان ما هم معاصرین ما متعمدان برگردیم با حالت صابره استصحاب در جوامع حکم جاری کنیم خب خودینم بحث می‌وارد خودینم خب بحث فاتی مثل مرحوم استاد های خودی خود بنده اخباری ها از دید بیانی قائل هستن که استصحاب نمی‌شه خب اگر استصحاب جاری نشود ما برمیریم اصول رسوی بعدی اصول دلیل تنظیری یا نیاز میشه یا فرضاً مثلا اینکه الزم نیا خود حکم نیست یا برائت جاری میشه ما اگر برعاق مثلا بندش ممکن شدیم اون در حقیقت ممکن این طور نتیجه چی میشه که بعد از صد تنجس پیدا نکنه. نتیجه این این میشه. پس خودی مثلا اجتهادی خودی مثلا مقدمات میخواد. این دیگه مسئله در حقیقت از مخصص نیست درست اوقیوال کرده. در این در حقیقت اینه پس فرق این بحث ما با اون بحثی که در اصول ما داریم در سوال شیخ آمده در اونجا یک نکته زیادی داره اینجوری واسه هرایی تاریخو می‌رفتن اونجا یک نکته زیادیش اینه اگر شب در اصول در شواهد موضوعیه باشه صح نمیخواه این نکته زیادی اونجا خب بحثونه که اولا میخواست نمیخواد حالا میگن میخواد چرا چون هر کی بعدو میگه میخواد مشهور و بلکه ادعای اجماع شده که نمیخواد اگر نمیخواد چرا اینم باز بحثه من یک توشی زیاده ارز کردم و یه درد مواردم میخواد که توضیح شده یه مختصری دیگه ما شکنیم بحث را یه یه مختصری توضیح میشه بود یه بارد بحث بعدی میشیم سال الله و مهلا